بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صدی اللہ نبینا محمد و آله اجمعین و علا جمعی الانبیاء و المرسلین ما عنوان بحثمون دوحید یک تا پرستان بود یه قسمتی از این که مقدمه بود ارز کنم که راجع به این بود که با چه ابزاری میخواهیم وارد این بحث بشیم گفتیم ابزار ما قرآن کریم و عقل خالصه استلال بعد مخالفان رو نظرشون نقل کردم که یه دست اخباری ها بودن گفتن عقل راه نظری به خداشناسی عقل کی؟ عقل من عقل شما عقل انشتن، عقل ارسطو عقل کی عقل بیست سالگی 50 سالگی گفتیم محصول ما از عقل برهان عقلیه، استدلال عقلی است که اگه بچم بیاره استدلال صحیح قبول میکنیم، انشتان هم بیاره قبول میکنیم پس بنابر این عقل یه کلمه مجمل است منظور ما برهان عقلی است حالا نمیخوام تمام اون مسائلی که گفتم تکرار کنم فهر بیام جلو تا برسیم به مطبع امروز و بعد هم گفتم این روایاتی که شما میگین بعد به روایت مراجع کنیم بیشتر اینا خبر واحد اخبار آهاد به قول علماء خودتون و زنی اصول دین رو با زن نمیشه ارز کنم که حل کرد و پلان کرد بعد آمدیم سر صوفیه اونا که می گفتن که عقل رو بذار کنار و با کشف و شهود باید به مطالب برسیم گفتیم کشف و شهود همونطوری خودشون گفتن تو کلاباشون نوشتن بیشتر رمزیه مثل رؤیاب تعویل ورداره عقل که باید اونو معنی بکنه تفسیر بکنه پس عقل معذول نیست به علاوه خیلی از کشف ها و ضد کشف‌های های دیگرانه شیخ اشراق گفته که من کشف کردم که ماهیت اسیده نه وجود مرد و میگه من کشف کردم که وجود اسیده نه ماهیت پس اینا باز اختلاف دارن به هم باید برگردن به کتاب خدا به اصل دیگهی بعد همطور دست های مختلف که با خردگرائی مخالفن هی آرائشون آوردیم و جواب داریم به اونها پس از این مرحله حتی گفتن که بابا عقل اشتباه هم میکنه گفتنم شما از کجور فهمیدی که عقل اشتباه میکنه لابا صحیحشو فهمیدی که یون اشتباه اون فکر اشتباه هم. پس میشه سعیش هم میتونه بفهمیم اگه کسی میگه یه مسئله غلط حل شده حتما باید صحیحشو بدونه تا بگه این قدر حل شده اگه سعیش رو نزونن از کجا میدونه قدر حل شده پس تو کی میگه عقل در فلان جا اشتباه کرده پس علاوه سعیش رو دانستی که میگه اشتباه کرده پس سعیش هم میتونی بفهمی و علاوه هستم اشتباه میکنه سراب رو آب میبینه حالا دلیل بر که ما چشمن بمندیم بگیم چشم به درد نمیخوره نه یه خورمی جلو میو اشتباه کردیم این آب نیست سرابه عقلم همینطور ممکن اجتباه بکنه دقت زیادتر بکنیم، مطالعه زیادتر بکنه ممکنی به اجتباهش پی ببره بنابراین منطقه عقل چیزی درک میکنه که حس اونارو رو درک نمیکنه یه طبیب مریض میاد پلوش یا دلم درد میکنه این حس میکنه ولی نمیدونه که لوزل میدست، میدست، رودست، آپاندیسید داره اون طبیب از راه آثار این درلی که در این هست میگه او این آپاندیسید فوری برو بیمارستان میام عمل بکنم باید الله این شرکی که در این آپاندیسید هست میترکه که عرض که شرک داخل خونت میشه خچرناکی بنابراین عقل و تجربه اون که از اثر پی به مؤثر میبره یه چیزی در کرد عقل و تجربه دکتر که خود مریض که حس میکنه دردو نتونست بفهمه که این مال چیه و هر حال پس عقل خواست گوناگون داره یکی اینکه کلیات درست میکنه یکی تجرید میکنه یکی آقابت اندیشه مبدع گراس مسلحت گراس مسلحت مینه و امتیازاتی داره که حواس اون امتیازات رو ندارن ولی حواس هم خودشون امتیازات خاص خودشون دارن بالاخره گفتیم که ما برای اینکه وارد این که واردیم بحث بشیم از دلایل عقلی که آیات شریف قرآن هم تاییدش میکنه استدلال میکنیم برای ورود به این بحث درست این مفصل روی این صحبت کردیم هم من میخوام خلاصهش گفتم که وارد بشی بعد از این مرهده، حالا ما این بحث رو می‌کنیم. حالا که ما می‌خوایم با نیروی اقلانی و کمک قرآن وارد بحث الهیات بشیم، یه سوالی پیش میاد. چه لزومی داره که ما اصلا بریم دنبالی تحقیق کنیم ببینیم خدا هست یا نیست؟ لزوم این بحث اول ثابت کنیم بعد بریم سر موضوع. هر چیزی با مقدمه باید شروع کرد. متکل نمیده سابق دو تا دلیل آوردن برای اینکه لازم ما بریم تحقیق بکنیم درباره خدا یکی این که گفتن شکر منعم واجبه یعنی کسی به انسان نعمتی بده انایتی بکنه لطفی بکنه ما از او باید سپاسگذاری بکنیم عقل اینطوری حکایت میکنه غذابت میکنه و اگر نکنیم اغلا ما رو سرزرش میکنن که این آقا انقدر به تو خوبی کرد یه تشکر رو زرش نمی روی این میگن ما اگر نگاه کنیم از زمان تولد من هم همینطور نعمت های مختلفه که از زمان تولد ما تا وقتی که به سنین با میرسیم برای ما رسیده باید ما تحقیق کنیم این نعمت ها از کجاست مال کیه؟ طبیعت بیشعوره یا پشت صحنه کسی دیگه ای هست منعمی هست بنابرین بر ما لازم میشه که تحقیق کنیم که منعم ما کیه تا سپاسگزار او باشه و اگر این کارو نکنیم و ما رو ملامت میکنن که شما کفران نعمت دارید دلیل دومشون این است که میگویند که انبیا آمدند در عالم گفتند خدایی هست و شما تکالیفی دارید و اگر این تکالیف عمل نکنی خطراتی بر شما هست دفع ضرر محتمل امر عقلانی است یعنی وقتی ما احتمال میدیم که ممکنه راست اینا گفته باشن و ضرر بزرگی به ما میرسه و تحقیق کنیم ببینیم راست گفتن یا نه تحقیق نکرده ممکن راست گفته باشند و ضرر بزرگی به ما برسه بنابراین دفع ضرر محتمل یا امر اقلاغ نیست اینا را متکلمین را گذشته مقدمات ورود مباحث الهیات کردن گفتن به این دلیل ما باید تحقیق کنیم این خدای هست یا نید؟ دینی هست یا نیست؟ تا من یه موضوع دیگه هم از خودم اضافه کردم بر اون چه که متقدمین قدیم گفتن با اون این است که اساساً عقل ما از بس تو زندگی دائما گفته چرا چون چرا چون, چون، چرا اینطوریه چرا اونطوری شد چرا دیر آبدی چرا زود آبدی چرا حواسر شد چرا هوا... این چرا چرا از لوازم عقله بنابراین ممکن نیست که عقل نگه تری موجودات پدید آورند علتشون چیه مبدایشون چیه از کجا پیدا شدن این که از لوازم عقله حتی ممکن کسی شکر منعم و نمدام ترس خوب از احتمال زرر رو اینا در نظر نگیره بدوسن ذات عقل ما رو به اینجا میکشه لذا اون که منکر خداست و اون که معتقد به خداست بارها در این قسمت رفته پک کرده منتها اون یکی به نظر ما رسید حقیقت اون که اشتباه کرد نرسیده ولی بالاخره عقل ما رو به اینجا میگیره همونی که مولوی میگه روزها فکر من این بود و همیشه سخنم که چرا قابل از احوال دل خیش تنم از کجا اومدم آمدنم به چه بود به کجا و آخر نه نماوی وطنم این دو تا سوال بزرگ عقلانیست که برای تمام اغول مطرحه و همه دلشون میخواد اینو جواب درسته حسابشو پیدا کنن پس طبعا انسان وارد این مباحث میشه و هم بشه حیوان ممکنه تا اینجا که ما اطلاع داریم حالا ممکنه در عالم حیوانات هم خبره باشمانم حیوان ظاهرا این بحث ها براش مطرح نیست این خاصیت عقله. عقلانیت اقتضا داره که این مسائل رو قد بکنه صحبت. خب حالا بعد از اینکه لزوم ورود در این مباحث به اصطلاح اساسی رو به مبدا آپرینش شد، حالا ما وارد عدلش خواهیم شد. و بعد صبحاتی رو که مخالفان کردن یکی یک مشرح میکنیم و جواب میدیم اول بعد از الله مثبت این قضیه رو که اثبات میکنه از کنم که بیان بکنیم بعد بنابراین این بحث رو من ترد عنوان اثبات وجود خدا مطرح نمی کنم. خدا یه حقیقت ثابت اثبات کردن نداره در واقع ما پی به وجود او میخواییم ببریم نه اینکه او رو اثبات کنیم ثابت کنیم که او هست او یک امر ضروری ثابت قطعی است بنابر این انسانی که تلاش میکنه برای اینکه کشف حقیقت بکنه این انسان بهش میگیم سالک راه حق فلسفهی قدیم سیر این سالک رو دو جور تعریف کردن یکی برهان انی، یکی برهان لمی یکی از معلول به علت رفتن، یکی از علت به معلول آمدن از معلول به علت رفتن، مثل که خدا کرده شما مالاریا داری؟ میری طبیب برنگ روز زرده، تب کردی، نبضه تو میگیره آثار دیگر میبینه میگه شما مالاریا داری؟ از آثار پی به اون بیماری میبره برهانی که از اون طرف هیچکدوم از این کارا نمیکنه اصلا شما رو ندیده خون شما رو میدن تو آزمایشگاه اونجا میکروب مالاریات توش هست میگه الان این شخص تب داره الان این شخص رنگش زره الان این شخص داره میلرزه الان این شخص تننشانه از علت پی به معلول میبرند غالب فلاسفه میگن ما بریم از علت بیایم به طرف معلول چه جما که به خدا احاطه نداریم قرآن کریم همش از معلول ما رو به طرف سیر من الخلق الى الحق اونا میخوان از اونجا بیان ولیزا چیز چیزی که مطرح میکنن وجود اول اول میگن وجود یک امر بدیهی است که همه میدونن که اشیاء وجود دارن بعد تقسیم میکنن به واجب الوجود ممکن الوجود ممتنع الوجود و بالاخره میخوان ثابت کنن که واجب الوجودی هست که ما ممکن الوجود ها پیدا شدیم ولی در اول بحث بینشون اختلاف شدیده یه دسته میگن عالم وجود محص نیست ماهیت هم همراه این گل وجود داره با یه ماهیت مخصوصی اون کیف هم وجود داره با اون ماهیت مخصوص اون وقت دعوا و منازع دارن که ماهیت این اصله وجودش تابهه یا وجودش اصل ماهیتش تابهه یه دستشون نصف شیخ اشراق میگن نخر ماهیت اصله گوشت و پوست و خون و روح و اینا اصله وجود يا امر عارزي است يا امر ذهني است يا امر است ولی مثلا مولا صله و سبزبانی میگن ان الوجود اندنا اصیل و دلیل من خال فنا علیلو، وجود نزد ما اصیل ماهیت تابع وجوده و مرافعه دارن هنوزم مرافعشون حل نشده از کنم کی و بعدم گیرم به وجود راه یافتید اینکه وجود خدا نشود اشیاء رو دلیل وجود اینا تو ذهنتون انعکاس شده به وجود خدا که شما نرسیدید که از اونجا بخواید بیاد. بحث های مفهمومیه نه بسایی مستاقی مستاقا شو پیدا نکردین میخواید اثبات بکنید. ما اون راه رو نمی‌ریم. ما راهی رو که قرآن کریم گفته پرزور الی آثاره رحمت الله و من آیات و من آیات از راه آیات و علامات ما میخواییم به ذات عدیت راه یابیم و اندازه که این علامات رو نشون میده این علامات مقداری یعنی ذات خدا رو کاملا که نشون نمیده و حقیقتاً معلوم میشد بر ما و اندازه که این علامات نشون میده ما معرفت رو به خدا پیدا میکنیم اینجا علم هست قدرت هست حیات هست, هلان هست، اینا پر اون خرشیل حیات و علم و قدرت و عظمته. ولذا اولین گاممون با طبیعت از قرآن اینه. اگر از محدودیت ها بگذاریم به خدا میرسیم. این فرموله. حالا ثابت میکنیم. اگر از محدودیت ها بگذاریم به خدا میرسیم. یعنی چه یعنی ببینید که در این آلم اشیاء گوناگون هستن همشون محدودن اگر بی آهن در آلم بود هر چه بود دیگه آهن بود دیگه مثل نبود روی نبود اگر بی مس مثل بود خب هر چه بود دیگه مثل بود دیگه بی اندازه نداره پس اینکه هم آهن هست، هم اسم هست، هم مثل هست، هم خاک هست، هم آب هست، هم شوب هست همشون محدودن. و ال هر کدومشون نامحدود بودن جای دیگری گرفته بودن. هر چی بود دیگه آهن بود مثل بود. خب. پس در اینجا معلوم شد که همه اشیاء مادی، که ما ملاحظه میکنیم تو این عالم همه محدودن، هم ولی حالا خروارها باشه هزاران کیلو باشه هر چی میخواد باشه باشه این یک دوم این که ما میخواییم بگیم هر محدودی خود به خود پدید نیمده هر محدودی هر موجود محدودی به اقتضای ذات وجود نداره باید دیگری او رو پدید آورده باشه چرا؟ شما میگیم مثلا مثلا مثال میزنم این جلد، این محدوده مثلا نیم متره میگیم به اقتضای ذاتش باید باشه کسی پدیدش نیبرده ذاتا این باید باشه میگم خوب چرا یه نیم متره دیگه مثل این که فرضینه که اونم از همین جنسه به همین شکله به همین... چرا اونیست؟ اگه اقتضای ذاتی این جنس اینه که باشه بعد اون نیم دیگرش دیگه هم باشه میشه یه چیزی اقتضای ذاتش وجود باشه در این حال اقتضای ذاتش عدم هم باشه نمیشه که تناقضه بعد میریم روی سوم نیم متر هر چیزی که به اقتضای ذات هست بعد بینهایت باشه و چون اشیا همه محدودن هیچ کدوم به اقتضای ذات موجود نیست وقتی که این به اقتضای ذاتش پدید نیمده پس یه ذات دیگه اینه ایجاد کرده دیگه و اونم باید محدود باشه ولی اونم در ردیف همینو قرار میگیره مخلوق میشه پس او باید بین نهایت باشه اینها همه محدود خدا میگه فرمه چی؟ گه الله خلق اللهو الله خالق كل شيء کل, کل فقدره تقديرا اوست که همه چیز را آفریده و به هر چیزی او اندازه داده خودش بیرون از اندازه است بنابراین ما اگر از حدها و های این موجودات عبور بکنیم به یک بی نهایتی می رسیم که او تمام این حدها و ها رو گذاشته فلاسفه اروپا چند دلیل به کار تا اینا آوردن کانت به همهشون ایراد گرفته اصلا این دلیل رو متوجه نشدن یعنی اصلا چون مطرح نشد این یعنی دلیل تازه است. دلیل از برهان وجودی برهان های زیادی که همه اشکال توش کردن ولی این و یه برهان دیگه که حالا بعد میگم اینا اصلا مطرح نشده در غرب اینا جدیده یه برهان دیگه که ما داریم اون این است که ما تو عالم رنگ و شکل و مغزار گرفتاریم هرچی نگاه میکنیم یه رنگی داره یه شکلی داره اگه یه کلنگی برداریم این خونه رو خراب بکنیم باز به رنگ و شکل دیگه میرسیم از عالم رنگ و شکل و مقدار و کمیت و اینا خارج نیستیم تمام این عالم همینطوره خب آیا این رنگ و شکل و مقدار اینا مستقلن یا رنگ و شکل یه چیزی هم آیا موجودات که حرکت میکنن حرکتشون مستقل یا حرکت یه متحرکیه درست؟ رنگ و شکل و مقدار که مستقل نیستن که رنگ یه چیزیه شکلی یه چیزیه مقدار یه چیزیه حرکتی گاز، هست حرکتی متعرکیه درسته؟ ما می‌بینیم دائمان این رنگ ها و شکل ها و مقدار ها تغییر میکنن انسان با رنگ و شکل معیین نیز خاک میشه درخت ها همینطور حیوان ها همینطور کلات آسمانی شده در شدن مثل سنگ های پراکنده فضایی عالم آلم, آلم تغییر رنگ و شکل و مقدار و ایناست خب مادی میگه که اینا نابود که نمیشن اصلشون، ماده اصلیشون حالا اسمشو انرژی بذاریم، اتم بذاریم، هرچی میخواییم بذاریم اون ماده اصلی باقیه اینا شکلهای او هستن اون که از بین نمیده این شکلها تغییر میکنه عوض میشه ما میگیم بالا قبول داریم شما از تغییر این شکلها و رنگها و بعدها و مقدارها و کمیتها فهمیدید یه چیزی هست که اینا مال اونه این رنگ ها و شکل ها و کیفیت ها ماده اصل اصل است، مال اصل انرژی مال حالا جوهر آدم اصل آدم به مادین میگیم میگیم خب از تغییر اینا پی به اون مردید حالا اگه اونم تغییر کرده باشه اونم مثل اینا تغییر کنه باید از اونم یه قدم برید اغفتر میرسید به ما برای ماده چطوری اون تغییر میکنه؟ میگیم که رنگ و شکل و مقدار و اینها با جسم منفک از جسم نیست که اینا لازم و ملزم همه یکیشون تغییر بکنه به حکم قانون تأثیر متقابل دیگری هم تغییر بکنه اینا متصل به همن رنگ چیزیه شکل چیزیه مقدار چیزیه وقتی این تغییر میکنه اینطوری نیست که رنگ و شکل و مقدار و وز و این این ها یه آدم دیگه ای باشه اون ماده اصلی چیز دیگه باشه اینطوری نیست که منفک از هم که نیستن یه آدم با هم هستن این تغییر که موجود تغییر دیگری هم میشه تغییر متقابل تأثیر متقابل رو هم دارن و چون شما از تغییر رنگ و شکل و وز و این به ماده اصلی بردین وقتی که اون ماده اصلی هم تغییر بکنه از اونم بعد به همون دلیلی که در بار اول حرکت کردید از اون رنگ و شکل به ماده وقتی این ماده هم همون تغییرات درش حاصل بشه از اونم برید به ماوراء ماده یعنی متافیزیک یعنی یک امر غیر مادی یعنی زیر بنای عالم یا امر مادی نیست یا امر غیر مادی است به دلیل اینکه ماده صورتن و باتنل در تغییر و در تحول و تغییره. درست این برهان دوم است. یکی اینکه اگر از حدود حدها محدودیت ها بگذریم به خدا میرسیم یعنی؟ خداوند همه موجودات محدود ها پریده و خودش نامحدود برهان شد دومی این بود که آه آلم یه شکل و رنگ و مقدار فلانی داره که از اینها ما پی به جوهر آلم میبریم شکل و رنگ و اینا که مستقل نیستن شکل یه چیزیه رنگ یه چیزیه مقدار یه چیزیه وقتی که اون چیز هم مثل اینا تغییر کنه از اون بعد باید فراتر بریم چرا اون تغییر میکنه به دلیل اینکه عالم یک سیستم پیوسته است نه گسته است. رنگ و شکل و مقدار اینا یه چیز دیگه هستند که ماده اون طرف باشه شکل و مقدار رو کم و کیف خود همون ماده است اینا با هم هستند تاثیر متقابل رو هم دارن منفکی از هم نیستن بنابراین این باید از اون هم و همون دلیل که از اعراض به جوهر منتقل شدیم از جوهر هم به ورای جوهر منتقل بشیم میشه متافیزیک میشه ورای ما ماده اون دیگه حقیقت بسیط با بسیطه دیگه اون قابل تغییر هم نیست برای اینکه مادی نیست که تغییر بکنه یعنی ذات عهدیت این هم یه برها نیست برای این که اشون بده که ما از توجه و تحلیل همین قضایای محسوس مادی این عالم میتونیم به اون حقیقت نامحسوس که مبدأ عالم زیربنای هستیه که ما خدای تعالی بهش میگیم پی ببریم حالا دلایل دیگم هست که کی در جلسات دیگه ابتدا خواهم گفت